تنم و باغم عشق تو چه تدبیر کنم تا به کی در قمت و ناله شب گیر کنم دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود. مگرش همیز سر زلف تو زنجیر کنم آنچه در مدت هجر تو کشیدم حیحات در یکی نام محاله است که تحریر کنم با سر زلف تو مجموع پریشانی خود تو مجالی که سراسر همه تغریر کنم آن زمان کارزوی دیدن جانم باشد در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم گر بدانم که به تو بدین دست دهد دین و دل را همه دربازم و توفیر کنم دور شو از برم واعظ و بیهوده مگوی من نانم که دیگر گوش به تذبیر کنم نیست امید سلاحی زفت فساد حافظ چون که تقدیر چون این است چه تذبیر کنم